هرین المعصومین و لحظت دائمت و انداره مجمعین و که آه بعد در یک میان شروع فرمیدن و اینکه این که مرادیشان این مطالبی چی؟ آیا میکنم بکنمون از خیلی کتاب و حجه و سنت ار حاکت نفشه یا قرد حجه نیست چه از کلماتیشون پهنده که قرد حجه نیست و نظام اشکال کردن که اگر خود قرد محخوض باشه و قرد حجه باشه و نهره طریقی هر حقیق این اسواب ما رجوع به کلمات شیخ و کسانی که با شیخ مواقعان یه بحث کبرگی داریم که اصولا قطعی که در باب تنجز هست طریقی صرف نیست که خب بحث سابران گذاشت آخر بحث میشه شد بحث دوبومی که در اینجا هست این که اصولا کلمات مرحوم امالله محمد علی استقابادی چیه و مواردی بکیشون گنوان غیر کتاب و سنت بردن آیا همین طور که ایشون پرمیدن چقدر حاضر یا کبرای یا نه؟ ما چند مورد اساسی رو در کلماتیشون بررسی کردیم از ترین که مرحوم الله محمد المنستر آبادی با مراجعه به مجموع کلماتش مراجعه ایشان از قبض و یعنی این چیزی که اینجا به کار بردن هجته تصریح کن مقدمه ایش از از خواهدنشون گفتن وقتیشون تصریح نکرد با آنها خود و مرادمان یقین هم مردی اینو او قرفی و این او اوفیس. ما بوسیم این لازم مرادیشان خود جرد باشه تبیر ایشان بحثی که اساساً ایشون دارن بحث راجع به خود جیرده و بعدم از اون مطلبی که ایشون از هر ایشون به کل اصول نظر دارن شون می فرماییم که خلاصی محلویشان ما در استنباط فرقی ها احکام شرعی بین این احواس اصولی حتی مثل محفوم و مندوب و مقدمه واجب و به اینها مراجعه نمی کنیم برمیگرمی به کتاب و سنت سنت پیغمبر به شرطی که اون دو تا هم تفسیر تفسیر تحلیبه تفسیر شده باشی این خلاصه نظره ایشون. اگر در جایی هم دلیل نداشتیم در شوهه حکمیه بود احتیاج جایی میشه در شبهات موضوعی هم به حسن مقام یا اصحاب میشه یا اساس الهج جایی میشه اساس اتحاده جایی میشه به حسن موارد قاعده سوق مسلم جایی میشه به حسابه ترشیسی اونجا زیاد داریم که مساوی با اساس خلاصه تصاوریشان خلاصه شیده این آنه مقیده البته که عرض کردم بازم دو مرتبه ایشون در چلال این بحث یه بحثی هم که ایشون فلسفه هم کلامم هم دیدن آشان با مبانی اونها. یه بحثی هم که به اصطلاح امروز ما میگیم فلسفه معرفتی یا نظریه معرفت یه بحثی هم راجع به علم دارن ایشان خب میدوند از وقتی که فلسفه یونانی به این شکل مارکن من ترمخصم به عنوان آلتون عالمان خطا ترجمه شد در دنیای اسلام خوابیش yes. نردهای بود اون نرد معروف ابو سعید درو شیخ ام دو Actually, دور لازم میاد چون سوالو طرح بعد از احتیاثی و طرح نماز کبرا کبرا متعقب و نتیجه به به ابو با وصول دور رسان همین از قدیم مطرح بوده الان خوب در دنیای علم جدید در اروپا که کلا دیگه سوالو دیگه از باب الیرا این شنیه بحثش اینه که بحثش علم ای به این که مثلا میگن این دلیل قطعیه خب خود و عرفه هم خب متعلق این بگه فرصوی دلیل رو منطقی این شکل اول میدونستم جناب مولایون دام شعر معروفش پای استدلالیان چوبین باید پای چوبین سخت بیتمکین باید این بحث از اول بوده تازیگی ندارد قبل از مولا محمد عمین استرابادی هم بوده یا از طرف عرفه بود یا غیر بود ایشون یه نقطه دیگری اضافه میکنه بر خطای این علوم این ربطی هم به شریعت ندار معموم شیخنس نصف کلام ایشان نهبه بقیه مطالبیشان نهبه حتی در کفایه هم جزی از تلامیشون آمده و اگر تعمل کافی در کل فواهد بشه ایشون یه ای بحثی در کلیه علوم داره خلاصش هم اینه هلو می کنی یا قریب از هست میشه شود انسان یقین تکدامو کنه همین که از دستور شد یقین آور نیست اون به یقین مستقر و حسوریه. ما نبهیم ما اینجا بسمونه خود جده. اون یه زاویه دیگه یه بسم یکی از علیه که گفته که مثلا حتی یقین در اعتباری یا خود نیست در باقیه چون ایشون اول رس در علم کنند یقین می اول کلیش آورده. بعد بیا که اگر علوم حسی یا برای حس نبودن خطا تو شرح اون علوم شادم بر اصول علامه هم طباطبایی، نه این که حالا یشون مرادش از یقین خصوص یقین در داشت که جزء حجت مسالی یا حجت درفه این نیست مراد ایشان. بشه. البته از سر ما معمر آی متحرک ظاهر دیدون که با از زمان پیدا کرده من مقاله‌ام چیزی مراجعه نکردم و امروز داشتن می‌گی چون واسه فیو نیست. بناذاه بر روی بورجر میگن اوروسی کسی که تنبها کرده که نه مولانا محمد امین نقدی بر فلسفه و منطق عروسی زده شبیه کاری که غربی‌ها کردن و میگه با هیچ رابطه نشون با غرب نداره. چطور مثلا در غرب بیشتر رو گرادی و اگر حسی باشه یا طریب موازهش خریب حس باشه مثل ریاضی خطا درش نمید. اما اگر هرچه از حس دور بشه وسیلهی برای قسمت از خطا نداریم این خلاصه همین به اصول نداره اشتباه نشید این بسید کبروی علمی در فیزیک میاد در شیمی میاد در طبیلیات میاد در فلسفه میاد در منطق در همه جامعه این اخصاصه اصلا راجع به اصول ایشون این مقدمه های ایشون گفته از دلیل و تاسه مرمی و مقدمت تفتن طلاح ها با اون مرک جریب مثلا خب اون مقدمهش اشکال کلی تو علمه اونه یک کمه شده اون اشکال کلی بحث علمی نظره محربت و فلسفه محربتی و فلسفه شناخ اونه بحثی خودست اونه ایشون قبول نداره ایشون به نظر خودشون وقتی از حس دور شد دیگه اونجا رادی ندارد خلاصش هم اینه شما میگه این شکل اول یعنی آدن خوب شما شکلش درست میکنید اون حیعتش درست مادشش را میکنید مادشی تا گفتی در آلم متخیصی با آلم مانگره کنید کلا و کل حادثی با کلا شما میگید این رضا من در خیال بحثتی که الان توی منطقه جدید آمده در منطقه منطقه یا ریاضی. چون اینا شکله میگن منطقه عرض رو ما برای اینکه نتیجی گیریه بهتری بکنیم یک ماده ما اگر به اصطلاح ریاضیات تابع متقیر یعنی <تصحنت> به جایی که چار به اضافه 5 و ساویس با نو بگیم علیه به اضافه ده موسیقی باشیم این چه طابع متغیر شما به جاله 4 بگذارن. به 5 بزارن. به جاله 5 شده میشه بجهون هر چیزی اینو نتیجتاً اینا حل میشه اگر گفتین 4 بزارن بزارن بزارن. به اضافه 5 یکی اما اگر به اضافه ب می‌شود و ج بجه 3 مثلا هر چیزی س به اضافه شما سرها اینا این تصور پیش آمده خب این تصور با منطقه که در کلمات ها تو منطقه ریاضی چیز هم دارم من میخوام وارد بحث باشم. و لذا یامرش بحث منطقه رو به این شه با ب و هر ب با جی. پس با مثلا اون عالم متغیر کله به چه شیک هست بگذارشن تی شورنده ای اصلا من تی رمزی هم که ایشیم دوستی مخصوصا اصلا که دارم و حالا کدوم اصلا من هم اصلا اصلا من هم اصلا نمی‌دونم حالا کدوم جایی میشه بزنیم حالا کدوم جایی میشه بزنیم حالا کدوم جایی میشه بزنیم حالا کدوم جایی میشه خوب اشکال ملا محمد امین اضطرابد شما با شکل آسمان از خطا درست کردید ماده چکار میکني العالم متغیر کیو ک العالم متغیر کل متغیر حادث ي ک ل متر حادث رو چکار میکن شما آمدن برا تقسیر مواد فت یا برهان است یا نمیم خطابه است یا ن جدل یا شعر یا فلان خیل خو بسیا کي فت ماده جزو برهان چی گفت کلومتقی کلو نهاده زید و برانه چی گفت کلومتقی نهاده زید و مشکلات نباشه خسابی نباشه جدنی نباشه یعنی شما در منطق وسیله ای این ندودین که وی ماده کار بکنه وسیله تو رفت باید حیعت؟, حیعت به تنهایی که آسمت خطا نیست ماده است. این منیخواد اشتاله یه بحث شناختیه فلسفه شرافه فلسفه معرفتیه این اصلا به حصول و جیهت و چه اول وقتی ایشون وقتی میدینه میزنه میگه حس و غریب حس اینا قبولی مثلا نفذتو تونه کمیگه خیلی واقعه شماره میدینه نفذت میگیری ساعت بگیر نمیزون تونت کمیگه میفهمی ایشون حس و غریب حس و قبولی کنیم غریب حس ریاضیات هست زوجه چرا؟ چون زوج در اصطلاحشون هر عزهی که به دو قسمت در ک پنج رو تسکیم یا یک چهار میشه یا دو سه میشه این مسایم نیست. پس این فرد بود رو تسکیم بکنیم دو دو میشه این قریب روی در تکسه شما سونده خب در فیلویی بسونده این تر میبره تره درمیزه این براتره درسته؟ یه بحث فلسفه روشن شد چیه در این فلسفه شما وقتی کامده اون علوم رو حلاجی کرد میگه خیق و اصول جز اون قسمت ها اقرار که از حس و مبادی حس دورن از حس و مبادی. تو اونها کلن تو حکمت علاقی و اولو خودش قسمتی از طبیعی اصلا در اونها کلن ما برای ما علم پیدا نمیشه. این گفته قبول دارن این رو گفته. این علم پیدا میشه به این معنا. یعنی شما سیاس کردیم یقیناور یعنی و یقی یعنی نمیاره. ب دریشان asker اما این خیلی هجت جهت بحث و اصول <تصفيق> ایشون شعرا ما کلی که علوم رو زیر سوال بود به خاطر اون یعنی یک تقسیم بندی کرد فلسفه علمیشون در بحث است یعنی توی علوم جدید اون خودش بحث دریشان فلسفه علمی بحث خودش این چیز خاص نیست ایشون ایشون آمد در این تقسیم ما در تقسیم بندی خود ما فقه و اصول رو در اولوم اعتباری قرار شدید اولوم حقیشی و اولوم اعتباری ایشون بگه اولوم حقیش و اعتباری اولومی که بر میگنه به حس یا قریب هرگلست دو اولومی که دورن تو این قصد آزا اصول خیر درار درست خیر درار درست اما درست در اینجا وقتیشون مناقشه در یقین میکنه خایناهای مرادش همون یقین منطقیه طبعا مرادش همون در در ال بحث میکنه همون یقین فلسفی مرادش. لكن ایشون محق به خصوصیت نداره. کل اینطوره لكن ایشان دنبال یقین صرف نیست. ایشون در درجه تصریح میکنه حجت. حالا ممکنه یقین نباشه اما حجت باشه. پس این که مثلا مرحوم شیخ عده این مقدمه ایشون نقد کرده و گفتن پس نتیجه نتیجیه که ایشون میگه یقین بر ما پیدا نمیشه. <تصفيق> این, نمیشه. این اختصاص به اصول نداره مطلبه چیل که الان انشاءالله روشن شد به هر حال برگردیم به بحث خودمون اخباری ها مقصدن بعد از ایشان کلماتیشون رو قبولدن پس یه بحث کل اصول زیر سوال یه بحثم خب این الان جای بحثم می جنیستون به بحث عرف هستیم به بحث وجهت عقل هستیم و این حرف ها کل ارحاث زیر شد. اول در اون مقراری پیشون از عبهاد در کرده چیزهای رو در قبل از شهید اول از, از شهید و از محقق و علامه نهار کرده تو خب تطریق نداره یعنی پسون از محقق دو چیز نهار کرده از یک آهید یه سه چیز نهار کرده از یک آهید یه چ... یکی نهار کرده ایشون همه رو با هم جمع کرده دلیه فکری که گذاشته کل رو کرده دوازده مسئله سر این سرین در مسئله کیشون داره یه چند تاش دیگه اون با قول عربا میان به سل اون اساس کاره این. یه چند تاییش این جزه اساسه یک حجیت زواهر کتاب یعنی کم کم اینها شد مابل تفاوت ما بین ما و اخباری ها حالا مثلا بحث حجیت محکوم رو بحث این خیلی اصلا نکرد اصلا بعدها بعض از اخباریام مثلا شهیدای خوب و دیگران منظور صدرالشاطر اصول اصلی ایشون چاپ شد اصل بحث مفهوم و شرط هم از دووار در میاره همین اصولی که داریم ما از امروز و وجود میکنیم همه همرو از دووار در میاره دوره اصول رو از دووار در نمیذاره مفهوم و شرط تمام اجتماع هم نه از در دلگار همین رو هم رو پس یک بحثی چند تا بحثیشان انصافن شد بحث اصلی که خب واقعا بحثی سنگیلی یکی حجیر زواهر کتاب که دیروز اجمالا نرکرده یکی بحث حجیریت استطاع که باز هم دیروز صحبت شد من الان دیروز یک مطلعیمون به امروز تکنیم شده استثال یکی براعت اصلیه من براعت اصلیه رو عده از اخواری ها مطلقا شده منکر شده هم تو قبول کردن تو شباهات فقلیمی خواهد شده این هم هست یعنی خیلی همچین نرف شا عباسی نشد بقوله برایتش خیلی نرف شا نشد این رؤوس مطالبه رؤوس مطالبه که ایشان داره اونه که بعد محروم و ملتوق و ملازمات و مخدمه بکنه اونها به خیلی ما برش دید بودم توقیه داریم زنها خیلی هم عرضش داری ایناش عرضش داری حجیت زواهر کتاب براعت اصلیه استثام اجماع یکی از ترجیحاتی که در کتب و اصولی آمده اون دوستای اصلیه هم استحسان و مساله مرسله از استحسان و مساله مرسله از فرم کرارن در کلمات اصولین قبلی نوست مربون محقق و علامین رو من رده ایشون فرمیدن اما همین استحسان و مراسل مساله مرسله یواش شواش در تیما بعد این شد تو احر رفت وقت احر بیشتر چون از اززفایات در آوردن موجود زوایداری که قبول کرده استحسان و اززفایات در آوردن هجمار هم قبول نکرد دقت میکنی؟ رفت تقریبا بعد ازها اومد وقتی میگوستن بیشتر این استعثان و مساله یا مرسله که عربی با این من را کسی مخالده پس اینها ارکان بحثی هستند که مرحوم استرابادی از کم دوازده ارکانش عرکانش این ها راجب زباه صحبت شد برای از شد راجب یک کلمه مونده بود از کل بروز اجماللا است که پاسیشال در محل خودش احصال رو اهل سنتشی و معنا کردن سوزیات شددادیم اجمالا از کل ما به نظرم خود ما رو اون نتیجه نازیم بعضی حال درزشون که احتصاال از اخبار گرفت اون روی استالش ها منطفی شد.بیگحملات ریشال کرد شد. چون برگشت استاحصال از اخبار و محجوم کردن به همون نظراج تبدی در اخبار. از اوور هم حاضر نشن تجاواکنن. از تو با هم مثات نیست مثلا. دون از از اخبار استفادهش. مثلا ما عرض کردیم انصاف عدلیه استثابی ان رو عرفیه یا امر ارتکازی یا امر وجدانی است، احتیاج به تعبده خاص نداره، ادعارت به خاطر شهرته و واقعیت این سیره کافیه. لکن این استثابی که همون جایی که دیروزم عرض کردم، در موضوعات خارجی که طوامی دوامی, دوامی دارن، این ارتکازیه ماست. مثلا زیر و ساختمانی سالم بودم اون سالم زیر زنده بودم اونی که محله کلامه در حیقت استصاب در شباس حکمی است یعنی شما بجهد شباس حکمی در اعتبارات خانونی استصاب در احتبارات خانونی مولا ما هم در این اشکال میکنه به نظر ما هم این اشکال وارده ولی نه به تقریبیشان به تقریب خاص خودمون. این انصافه وارد یعنی اشکال انصافه البته که ایشون استصاب رو به حکم عقل گرفته همین استصاب هم استصاب رو برایه این دو تا استصاب داره در اون کسیلی که داره. به حکم عقل گرفته از که این ظاهرن نازم باشه به کلمات ادیت علمای اهل سنت که یقین یعنی به حدوث موجود زنه به وقاه ظاهرن مراده شده اقل این باشه که یقین یعنی به حدوث اماریت و دلالت میکنه برای زنه به وقا شادیشون این جویه. و عرض کردیم ما حق شما این است که استسحاب حکم عقلی ادعاییه یعنی نفس ما درست میکنه ما مطابق با واقع برخورد نمی کنیم. این اصطلاح رو که این بنده بذاشتم مفاد امارات رو گفتیم محبول اولی به اصطلاح اصولی نه اصطلاح منجری تن و مفاد اصول رو معقول ثانوی به اصطلاح اصولی شما یه درست با واقع برخورد میکنیم این اصطلاح شده شده زد زنده از میبینیم در باز ب. یه دفعه نه ما واقع رو نمیبینیم خوب دفع کنیم فرض میکنیم جهل به واقع خوب ولی این اصول لقصش همیه. در ظرف جهل به واقع جعل میشه نظام بشیم معقول سانی چون واقع رو فرض میکنه جهل به واقع رو فرض میکنه این کلوشه این لکه حلال حتی تعلم مناش اینه یعنی تو مجبوره داری تو وقتی مجبور بود حکم به حیلیتش بکن این رو ما معتداریم که ادعا نفسه چون من الان که نمیتونم بگم دیشت بیدم دیروز بیدم چهار روز پیش بیدم لیکن اون صورت ذهنی رو بهش ادامه میدم ادامه اون صورت زهنی اسمش استطحاب این یک نکته، نقطه دیگه بود شما ما از کردیم اصولی که ما جاری میکنیم مثل اصول برایت رویست دو جورن در اعتبارات قانونی یک اصول مفاد اونها عبارت از مسئله خود حکم مثل این حرام بود حالا حرام این خود حرمت این واجب بود الان واجب این جایز بود الان جایزه این مثلا مستحب بود الان مستحب این خودش حسن از اصول نه. رو خود و حکم رفتیه. میاد می به عنوان آم حکم میکنه. مثل مشهور از این از اصولی که روی خود و رو مهمش مهمش چرا؟ چون رو یه این طبقاً حرام, بود, حالا حرام بود. واجب بود. و نظام مفاده استثاب یکی نیست. مثل اصاف برای نیست. به موارد سرم میکنه دیگه. این نقطه اینه که این استثاب تو خود و حکم. به نظر واقع از استصحاب قیاس هم همینطوره. هلا چون قیاس آن جز امارات ضریفه رف بهنظر ما اساس میسر هر اساوا شوات حکمیه جاری بشي که آیا فلان چیز رو اسلا خداوند طاهر قرار داده یا یعنی به جعل ظاهري هم نه واقعي اساسوتهار د شتحکمیه برتر هم جاری بشه مشرور که جاریش میکن شبهه ما اینکه این روایت واحد از انصراف به موضوعیه دار هلا برفرد م قبول کردن فقط تو تهارتونجازت سریان نداره بر هم بنا به نظر کسانی میگن نفی واقع اون هم می که واقع چ کار میکن؟ مفال برای این است که شرطیت نیز، جزئیت نیز، نیز. شرط نیست جزئیت نیست مانعیت نیست هر شک و های نیست که می واقعا نیست. این اینکه موارد نیست که ما میرییم رو گفت و واقعاقع. بیا از که موجیت نداره حسساب در شما به بک مییه اساس تاار مشکل داره به نظر ما معظلت برتر هم قبول کردیم، موز اشتهارته براعت هم که با هر هرزا اصل عملی هستن یعنی طابعه واقع نیستن براعت هم مفادش این علمه تنگیزه احتمال و بوجودش اصله هست استثاب هم توخصه یقینه. یقینه به حدوث و توخصه اینجه بقاعه و نظر نظرش به بقاع صفت یقینه این حقیقت این است لذا استتحاب به نظر ما خوب دهت از حکومت فردشی به خلاف احتیاط در احتیاط این یا این واجب یا اون چون در برانه بین دو پس ما هر دوره انجام بدهیم ببینیم نیم این و اینه واجبونم بین این فرد بینه استتحاب با بقیه اوسف ما در شباهات حکومیه اونی که بین اصحاب ما معروفه چیزی که آم باشه در فقیل از استتحاب نداریم منحصه در استتح که کارش کهایی خود خوب مثلا مثلاً صادقان بود حالا هست، صادقان کهایجوژ حالا هست، صادقان واجب بود حالا هست، صادقان جایز بود حالا هست، صادقان حرام این، این فقط من هسته وسیع است. البته احصانات یاس زره، یاس زره اولام ما امارات گرفته. بنابراین که اونم اصل عملی محرز باشه هوپر خوب نیسته تاب میشه. چرا هوپ خب یاسی گوشیم کنن؟ فقط وسیع است. برایت هم که اصلاً ظاهر نیست. یعنی خود خود هوک به عنوان اینه ما حناجگیری جمع بین این مسائل اینه یعنی که ایشون یا دیگران فرمودن دلیل عقل استدتاف عقل این معنا درست قبول دل. ما هم قبول داریم عقل ابداعی مدرکات ابداعی عقل چون بطور کلی مدرکات عقل یا این سوالیه مثلا شما این زرق و سوتی رو که می‌بینید هم در صدایی که می‌بینید ای این اینه که یا خودتون اجبار می‌کنید اخصاً به قانون نداره مثلا تاریخ، تاریخ بیشتر می‌پرند، این ادراک این خالیه شما، که چه هوازی واقعه، اما اساسی، اساسی اوضاع نفس شما، سواقیت نداره در <تصفح> خود می‌رسیم، اساسی، شینبو، شینبو، شین، چنب. چهار تا شش تا شش تا پاداش، یه ازیار کوچیک، اینها اساسی و, و, و این قوی‌تری است. مثل حقیقت حقیقت ادراک انفعالی ذوقیی است مثل مجاز ابداعی خود مجاز اونم شده شما اگه ادراکی رو دارید نظریه روشی تخته در مجاز وقتی میگی زید اون حرف زاد خب میزید که انسان عصبیتش اوج ابدا کرد این ادعا کردن به انفعال یک باب واثعیه فقط میگنی احساس نداره پس به نظر ما اینکه ایشون یه حکم عقله بر عقل, عقل ابداعی درسته ما اشاره از اون دیگه خیلی از ها تقریبی که مثال خوبی داریم خود محمولا و همه. ما بحث رو که مصرح کردیم گفتیم انصافت اثبات اعتبارات قانونی خوب دقیق بکنیم با ادراکات ادعای نفس خیلی و اغلایی میزهست بکنیم ربونی سمخون بگنم چون اعتبارات قانونی واقعی که ایستن اعتبار کرد. این به دست معتبر خوب دقیق تا اعتبار کرد تا حفاغ شما با اون ادعاات نفس که درستونه نمی تونه درستونه ادعاات نفس شما خود این من تقریبا الان حقوقی کره هر قانونی کره این احرایچ اینا دستن فرض شما با ادعاات نفس اون که قسم دومه اصلا نمی درست درستونه اون دقت کنید اسم اوله ادعاات نفس نمیگه این واجبه بعد میگه یا این واجبه یا اون واجبه رو حتما انجام بدید با این میشه او کسی دو یا این حرامه یا اون حرامه هر برو تحصیل نمیشه باید داده است این نفکه پنده بکنه شد بحثی که هم محتر کردیم شدیم نگفتن ما مواطنون این بحثی که این نفکه مفاد اصول دو جون یه اصولی که میاد به رو ثابت میکنه یه اصولی که خود رو ثابت میکنه یه خنوان این ادعاء نفس شما خودت ارزش بکنه نفس شما خودین نفس شما حالا اسمش جزء عقلی ادعای بقول چی توی این ده قبلش اون مثل محقق میگه اون ادعاییه چون صاور عقلی گیرنده لكن آن گه ادعایی نیست نفس این نکته‌ای که بیروزان رفع از رو گفت این بود این نکته تنبیه ای باشه کبروی تو شسته شما با ادعاءات نفس خود قانون رو ثابت نمی‌کنه قابل چیه کشور جدید ببین من فکر می‌خوام حساب قاعده باز مثل اینجا راحت‌تر ماشین انجام اشغال نشه خب بشون بیخود که اصلا قاعده فکری شد صحبت بکن خبر چیه قراره انجام بده من فلان خیابون نگاه کردم فلان نگاه کردم این نتیجه رسیدم که ببینید یه تپ روشن که بحث می‌کنی با ادعاات نفس مثلا نجیبش اونجا بود شبیهش اونجا بود یا زدش اونجا بود قسمتی نتیجه گیری کردن بحث من اینه با ابداعات نفس خود قانون اثبات نمیشه. اما عنوان ها شده، اون رو؟ اونشتران هم مثلا دیگه یا صلاح باشه یا من هر با انجام دارم این می با ابداعات نفس می شه. خیلی نقیقه یعنی حکم عقلی ابداعی رو ما دارش و نزا کلن اصلا ابداعات نفس مشکل رو داره اصلا مشکل ابداعات نفسی ما عقلان عقل ابداعی باشن تو معقلات ابداعی؟ این فعال که این واقع واقعه اون که اضافت واقعه اون که بحث نزده اونجا یک ما ابداع میخواییم بکنیم اگر میخواییم ابداع اینجوری بکنیم خود و حق. مثلا شاره آمد گفتی شراب انگوری حرامه من گفتم شراب از در اینجا حرامه از خود شبیه همه اونا موسیقی هم موسیقی خب اگر کنیم این چی که گرم اما اگر دکت کنیم این میگه این این ذهن توست این ابداع توست این رو باید از خود شارع گره روشن شد رو خیفنی اون جایی که ابداع نظرین یک تقریبه هی لطیفیه من فکر یک کنم شاید نظر مرحومالا من نستازم این بوده اگر این باشه شاید... این جون نمیشه اما این به نظر من یک تره لطیفی یک تره ایمی هم هست آه خود از داره تااروز بخشن است ما بودیم دهت تااروز نیم اخبار من گفتم درست از دو سه اساس کار یک نکته حقوقی است نه نکته خانمیه. با اون که قوانین و اعتبارات خانوی رو با امضاء نفس میشه یا؟ این فعال اشیاره معلم نباید سر معمولی که که شما جای مجلس شدیم تیم دهست و قائد بگیم. پس اینطوری مجاز جای کج بله اگر به شما گفتن یا این جا هر یا این اینجا ابداع نفس, ابداع نفس بگم کجاست اینجا ابداع نفس میان نفس میگه یا این یا اون نسبت چند متصالی هر دو انجام بده ابداع نفس در این حده نمیگه هر دو هم واجبه خب در قسم بکنه آه حکم نمیاره روشن شد مجای اصول به دو قسم شد حقیقت وصوبه. و عصوبه و اوشنگ ابداعات نفسه این ابداعات نفس اونجایی که مستحیم و حکمه نمی آدم بشر هم قائلش همه یکی کسی یک کشور داره میتونه که من فکر کردم حتی به قبار در چند تا تو توی این میکرم نواز میتونه با کنیجا مثلا اول خیامون مرور چیه نمیشه ما تبقیه این عمل می فکر می کردم به درد نمیخوری من محاسبه کردم خیام کردم خیاس با ابداعات نفسی نمیشه خود مثل حکم رو ثابت کن برای با ابداعات نفسی میشه عنوان آن بزرد قبوله یا این واجب یا این این اشکال ما راجع به استثاب پس به نظر ما حق با آن اخباری هست استثاب در شباز رو بکنید امسا آیا قبول فهم درد نه اشتران این اشتران قبول فهم درد شون ما اشکال تا قبول نداریم اما اصل اشکال رو این میدونیم. حسن قصور فهم اوغل شما اساسا استثحاب رو از فهم اغلایی خود شدون قصور فهم اغلایی در شمول استثحاب نسبت به اعتبارات بانه راجع به مسئله دیگه هم که ایشون مفتح کردن اجماع البته ایشون نگاه اجماع ما نوب دادن راستن بگه ایشون ایشون در کلمات علامه زیاد اجماع آمده در کلام مثل تیرون زیاد آمده به طابوس مرحوم سید و مرتضا زیاد آمده. ن میاد نه در کلماتش اجماع خب این آمده راسته ایشون. وشون آمده همله که این اجماعات آغاز در لبی خال اصله و مامور اصله. شیخ وادر وادز ماشوش ماش وادز ماشون نیستند ماش ماش واسه این از افزاد اقتدار محلی بوده و قلم شیخ متن خیر که اجماع اصل برای هفته سوم نه و سومیان اصلا برای اجماع میخواد بیدورگذاری و همول اطوله لح... لیکن ما سوزیش بدونم مسئله سیاسی اجتماعی سبسی به بحث اصول ندارم نه هست اونه آیت قابلشن از افعادات از مهلی ما که نتونم اطولش دروسیش اون بحث خلافت بحث دیگه نیست خودش داریم بحث بحث دیگه از این راسته این مطلب این اشکال کسرت تمسک به اجماع در کلمات اعلام هست و که اونجوور هم نیست که ایشان که هم فرند ده این نکات خاص خود وجود داره. خب موم سر موضوع خبر با دوجهت عادا در احکام برنگ به اجاعه آ اینطور رو دیگه، اون نکات خاص خودش که داره اجه پیش برخوااست خودش داره. خشون هم تقریبا قبولی کرده گفت اجاعه و جدید الا در دو مورد که اینکه کصاب این خودداما خیلی مشهور باشه. خب خبشون که مییه خط مشهور باشه، کسانی که الان مثل فرسون صاحب جواله دیگران از متاخرینه از صاحب کارشان اجما حضرته هر شم همینه دیگه باید باید اونا میگن اجما یک طریقیت داره خودش به و حضرتیت نداره لذا میگن اجما با جوری باشه یعنی مقداری از نگه نگاه بکنی که ملازمه داشته با قول اما از اجمای هم حالا مثلا خود مرحوم محدث استادی یا اجماع قدما واسط قدما عظام صدوق و دیگر مطلب بگه علاوه بر انسان انصاف وصول در از خلف امام عصر خیلی شما در یک دو تا خیلی سرسلا ندارید و, و انصافاً خود که من نگاه کرد تحلیلی در ما بحث مفصل ما شده در بحث اجماع خواهلاقا بررسی کردیم که از کی شد در کی شده و, و هست کردیم اجمالا ما چند جور در شیعه من به کار سونیا کردم. یک کلمه اجمال ملا بین بین و روایات داریم یک چند مورد اجماع بین فقهای های اصحاب داریم رمانو خود امامو ساده وید مواجش همه زیاده دعاوی اجمال در زمان مثل سید مرزا و شفتوزی در خلاف اینها داریم دعاوی اجمال در قرن هفتم و هشتم اینها مثل مرحوم علامه هلی و مثل کسانی که برداده ایشون تا ما ایشون داریم مثل شاگر کون فخر مرحوم دعاوی در پواختر قبل دهم و یازدهم ده داریم مثل صاحب مدارک و مرحوم مقدس اردالیلی و مدارکی دعاوی ایشون از مثل صاحب جواهر داریم و کسانی که بعد از ایشون آمدان گرده حکی مرحوم حکیم در مستنسر دعامی اجماعش و کلماتش خیلی نازل به جوانه ما یه تحلیل تاریخی مفصلی رازی به اینها و ریشایی ها عرض کردیم اصولا چیزی در این اجماع وجود نداره که بگیم حجیت تحبودی داره چه نظرن نمیاد چون چه در موضوع اجماع کرد تقریبا های تمامش رو پیدا کردیم گفت اداغارت از سبر زالا لجب خصد ذهن خود ما ریشاهای اجماع بیست دو مورتزا در روایات ما. در اصطلاح حلامه همی دیگران به ذهن خود ما سعی کردیم تا اونجایی خودان توفیح می ده. هم بحثای اصولیشو مدرد کردیم کبرایاتشو مثل که الان مدرد کردیم هم بحثای فقیل که این ریشای اجماع از کجا شروع شده و چرا آماده و در بررسی مجموع اجهات فقیل و اصولی همونطور که اصحاب ما گفتن اجماع و نداره اهل سنت اجماع رو مس کتاب و سنت منابع تشریع میدونن از زمان عمر شروع اجماع و جیت نداره و اونی هم که اصلا ادعای از گذشته ها میگفتن اون بحث هم ثابت نیست اونی که بیشتر متأخرین گفتن هرسه چه خب بذار ایشون این یک هرسه اوغلاییت داره مثلا فقط یه مسئله در کتاب خود مارس نیامده این باب اما بزرگان مارکسیس گفتن خب میگه میشه کش قول البته که چونی دوره ترمایزریک قبل از انحسان که بعد از این هزینه سال در اصطلاح مال بعد از این مارکس کاپیتال ما بعد این حساب رو به سازش لینیا شریف دیدیم. لینی دانست که کتاب داره. خب، به حالا که گفته بعد بزرگان مارکسی قبول کردند. سعی که ها گفته این مسئله به هر حال فعلا در فرنگ اقتصادی مارکس مارکسی وقتی صحبت از دوره بعد از انحصار میشه حرفا رو از لینین گیره مارکس رو میگن این رسم و اوغلایه که اگر فرضون 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا از روزوزان تفکر کنه یه مطلبی گفتن رأی اون ساده حل می کشن کش ولو عملا نگفته باشه دهقت میتونه این یه صحبتی حالا این مرزات چقدر گنجیت داره چقدر اوغلایه داره اهمالن برسته به درجه حجیت واسطه بین الله حجتون بین الله این صافت مشکله مرحوم الله محمد عمید میگه در قدما میاد قدماش هم مشکله اونم کهیتون گفته مشکله اون اینطور نیسته تو قدما هستن بله ما اگر در تخور رضا مخلقی آمد داره واسقی این اقضا جرد تقریبا جزم و داریم که روایت بوده به ما نرسیده اما حجیت دیده سبوت روایته. این روایت بوده اين من احتمالا یه ثانوان يه ايگاره ولی فقط يه ايگر ورگي داره اما فقط وجود روایت یک چیز و یک چیز ديگريه در اگه خویج نخست سر كه برای احتمالي خویجه بوده که شیطان تو من خویجت اینه این, این, این مثل نیست و حق با معصوم الله محمد عمینه. و این بوده قبول. این قبول ممكن خوبي خالقا سعی علامه الله ما شوند اصلا دعوی اجماعی کرد تا بین خودم های اصحاب هم نبوده اینه بین شیخ صدقی ها نبوده مثلا من الان اینجا ارزمی خیلی از دعوی اجماع علامه که بیشیابی میکنیم و اصل فتفاش دستان محسوس شیخ همه اصلا قبل نبوده. <تص> اون در شهر. شهر هم از اون نبوده اون درگاه در محسوس شیخ همه شیخ هم اصلش از اهل سنت گیرده تبریه کرده بعد از شیخ تا زمان علامه بعد موافقتاً با شیخ فتف الان یه اشتباهه مرادش اینه که فقه دیگیشه است خب این چه چیزی این می‌ره موافقت ایشون هست این از قول اهم میکنه؟ کنه تیم چه حقی میاره بین این مطلب و بولنه درسته ما خوب دراطق این نقطه رو ما به جای بحث‌های کبری و سر و سلا اینها بیشتر اومدیم ریشیابی کردیم و با شواهد و مدارک دادیم که به شینی میگه ان میگو فر چون اونبچه که ششونه ولی میگه حجت مصادرش و منابعش و مبادعش واضحه و دامن نیست ابهام نداره بله جا هر کدوم یه شراایتی برایش پیدا شد که و اعتماد به کلام امام فزال کرد حجت پیدا کرده. نکنه پیدا نشه حجت پیدا نمیکنه این اشکال ایشان به اجماط تا یه حدی وارد و توضیح ما هم هم راج به اجماعی این میگه امج کلام باریش یه خدایی براتون مرحوم حاجی نوری در تقریبا اواخر خاتمه مستدرک در این شاپی که از آن مستدرک شده اخیران در جلد نهم خاتمه که به ترتیب شماره 27 در همون شاپ قدیم جلد 3 در این جلد 27 از این خاتم مستدرک 12 تا فائده از کل مرمون شیف و 12 فائده در آخر وسائل اوزیشان 12 فائده او برده اصلا توائد ایشان با توائد وسائل فرمید این فائده 11 هم که ایشون اصلا در در وسائل نیست این فائده یازده ابداعات خود ایشانه افتقارات خود ایشانه اما برای حال دوازده هست شده ایشان که در این فائده, در این فائده ای که از سختی به حسن این که من دارم بله سی سد و سه داره من عمومیش چشمتها فرجیده خود مستذکی بقیهش خاتمه است باز یک شماره در خود خاتمه گذاشت شماره خود خاتمه 9 است چون مثلا 9 جل خاتمه که. اما تسلسلش با خود کل مستذکی سرده جلد 27 یا جلد 9 صفحه استیصادسی ایشون همین مطلب شیخ انصاری هم بتونید همین مطلب شیخ انصاری مطرح شد چون خودشون احوال مستذکی و بررسی کلمات مرحوم مولا محمدانی استرابادی کرده از ایشان نوشته که کتاب فواد مدنید که شیخ نبوده ایشون نوشته که شیخ از حیده رسول مسترچیدین گرفته حاشه معالم شده معالم من چون ایشان بود نکه مراجعه بکنم از اون صفحه 303 که حرف کردن تا صفحه 337 حالا یه حالا ایشان نوشته که میزم وقت همون تو خیلی عظم خلاصه ایشون مطالف دیگری یعنی. هن پیشون بوده حتی لطیف نقطهی لطیفی چون من تا اونجایی که من میدار فواد مکیه چاب نشده فواد مکیه خود مرموم استرابادی ایشون نوشته فواد مکیه استرابادی به حتی خود استرابادی پیش من هست اکتاب خانه من هست از اینجا هم نعم. از سواد مکیه حاجی نوری نهارم به هر حال این ایشون عبارات حاجی نوری اگرده یشون هم مطلبش مکلرش با اینکه یشون 9 سال قبل از ماه رمضان که میخواید مکلرش اینه مکلم که وایه شما از بچه اصولی شهادی بودی ماه رمضان خلاصش اینه که میخواد مولم از این استادی یک کارت هیچ نمیشه کارت پیدا شد و خلاصه این و دوستن ترجستی سه دویست دو صبحی این مکلمی که یشون نوشته خلاصش این یا به تعبیر بر مورد استاد میکنن مناقشه در سغرا در دیگر خلاف نکته میام و بریم اجازه بخونیم یعنی میتونیم لو بخونیم اگر ایشون اصرار که مرحوم مولا محمد علی نیسابوریه بدی بعضی حضرات میوردن خطو مراجعه کنیم اگر ایشون هم اصرار که مرحوم شیخ انصاری که استاد ایشون هم هست یکی از مجیزین ایشون هم شیخ انصاری است شیخ انصاری مثلا نسبت داده به اخباری ها که قد حجت نیست ایشون میگه نه اخباری ها رو نگفتن یعنی اد قیدا نمیشه لگه قیدا شون حجت نمیشه خلاصی بس نی... تازگی من بودم که مرمون هایی تو بس ها اصولی بشه خب اون صاحب که دو خدا تنید به ندارد ولی که برهای نسبتا خونست ایشون نتیجه نتیجه نهاییشون سابت پایه ایشون میگن مراد اخباری ها مناقشهی در صغراست و یا قرد پیداسا خود که اون ترتبانه مقلد اشتان برست نیست یا بخونیم الله علی محمد دیگه بحث رو روی ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> میگه ما می‌خوام واقعا اونجایی که مثلا همین اینا رو خود یه به لزومی الانم یقین داشت میشه. یقین داشت چه چیز این میشه. مثل احتیاج این کاشفی ازشم مولانا تا خوگی ہمارا از امارا است اما فر امارات است ادعیه از از خدا امارات چه باشم چون تنذیر یقین انا یقینش تنذیره اون شخص که زن نه حقیقی درک کردی اون شخص که زن نه حقیقی اون یقین تنذیر یا رؤیت تنذیر حاضر منزه دی در اون یقین ولی و این فرقش باقی اصول است اون یقین رو نزل نه اینکه من چون یقین اومد حالا شما زنداری دارید نگاه کنید بحث اون یقین رو الان میاره اینکه میگه جنبه جنب ها خیلی خلاف کلمات نه خلاف کلمات نه نگو خلاف کلمات درک شا... خلاف کلماتشون هست شما اگه به اعتراض اون طرف همین از شما دقیقاً یقین دارید. اما یقین تنظیم نیست، نه یقین. هست. اینه که اوخلی میگه استصحاب اماره است، اما چون جرد کاشفیت نداره یا مرحوم اینی میگه استصحاب به کشف ثابت میشه اما کاشف نیست. این تمامش اون نقطهاش این بوده. در واقع اون نقطه تبیینش این امروز می‌تونم بگم که اینجا امروز می‌تونم بگم که اینجا امروز می‌تونم بگم که اینجا امروز می‌تونم که اینجا امروز می‌تونم ابلاغ که اینجا امروز می‌تونم بگم که اینجا امروز می‌تونم بگم که اینجا امروز می‌تونم بگم که اینجا امروز می‌تونم بگم که اینجا امروز می‌تونم بگم که اینجا امروز می‌تونم بگم که اینجا امروز می‌تونم بگم که اخبار امروز اخبار بگم برن محدود میشه دیگه همه جای نمی‌تونیم. لازم که. به این اشکال نه اون که در شواد موزیک که خود برام از این استفاده میکنه در شد موزیک اونه. برای بودجه. مثلان نه یک اینی که اینجا تنصف اون میگه سگیه خوشا و گرنه من سه بار شد و نشستم. بعدش من شد و نشستم. بعدش میاد دادن ماست. ماست. رو تغییر. چیز تغییر. از این که نیست. میشه که متفکر میاد باید با حاضر جدیدی داریم صدر تمام دفتر حملین ما مولانا جدیدی نماینده در استانی شما و این رو قبول انفاس تاب تعصیرش قبول شما این مورد خودتون چند روز موقت باشه چند مورد دوائل مصباح مصباح من همیناش از وقتی که خونه برقاش متناسب متناسر شده دوائل مصباح که تا رو قبول میتونه یکه معتبر همش این حرف می گیرن موثق و معتبر هستن من تقریبا میگم اینکه چون چند داره برات میشه داره از اون واش اینجوری نداره میگم قبل از اون قبول داشتم ایشون میگه من برداشت من اینجوری بوده منظور داره برداشت من اینجوری حالا به هر حال بحث قبول دارم که در مواجهه من ایشون هستن تو کل سر از نوفالی نوفالی نه. نوفالی نه. نوفالی هم قبول من باキストو صداده نه فیل نه پلیو کیون چیز کاری که خاطرش چی چرا دیگه چون همین مبانی تکل میگه حد سندش موطل چرا دیگه موسار هم چون مصدران شیخ گفت میگه کامندار یکشان بحث باشه. چی دیگه هم دارمشون. چرا در همین مبانی هم تصدیق داره اینا مبادی مبانی در بحث نبون مباند... رو به نظر من از دیدگاه دیگه توسعه کرد ماند... ماند... اسمایی رو به خاطر اینکه کل منهم من قبول نمیشه قبول میکنیم قبول که باید شیط مخیل هم دویشن نیدونم چه همه دیگه اشکالت آمون که امین از سراغوی در بخش منطقه همین میشه دیگه این اصلا بخواد بگه قد نمیشه این منطقه اصلا بخد... منطقه معتبری نیست برای طورید یقین صغردی میخواد اما این احساس دین نداره چون در زنگی منادش یقین نیست منادش این حجاته آنه ممکنه ما در فرهود یقین نداره برای حجات داشتیم اشکال عام میکنه هبار. قبول من خودم قبول دارم کنجا میگه پیدا دارم شیخم همی همین همین اما اینجا ایشو میگه مراد از ما از یقین از یقین احض اینو حجت خمومگین یقین نمیست به ما اما تو قلوم اینطور نیست اونو حجات نمیشون حجات نمیشون. تو اونو که حجت تو پیزی که در تو من هم میخواد تعداد یقین رو داری هم حجیت حجیت باید نمود، باشد. و هم می‌خوییم که یکشنبه چند ساعت می‌تونیم یه ساعت و نیم، هم ساعت در یه و نیم، یه ساعت یا یه ساعت و نیم، یه ساعت یا یه ساعت و نیم، یه ساعت یا یه ساعت و نیم، یه ساعت یا یه ساعت و نیم، یه موسیقی. موسیقی. موسیقی. موسیقی. نه یه روایتی شاید نرکه در چه مثلا بگه خود پریشون داره بگشن این وقتم در موانیشون تصریح می کنیم این جه ها میگه مکهولتون یعنی در من که توضیح می ده ما که میگتیم گفته شد بحثمونه که در هاشی آمده بله درسته. تو نست هسته نه از اون جواب هم مزگوله هم. بله درسته. از اون جواب همه مهمشون. من نگم چند نظر بهت. بله چون خودش تصریف میکنم. ما چه بگه یکی می کرده این که نه. بله شب اول ولی مثلا خبتر شدار این نشمه کشم که دیگر که موزو داره جهده محصول قدید ساقصد و که باید خیلی به موزوی خیلی باید موشن جا به ایچ کسا از این که که که که که کسای شد اسوانه anjie manu ni zot pošnaš amela sa da razmetane niš fabriš